عزیزان، آیا تا کنون گم شدین و مجبور شدین که مسیرتون رو از کسی بپرسین؟ این خیلی بهتره که کسی به شما مسیر رو نشون بده و فقط به گفتن اکتفا نکنه. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. در این جلسه به بررسی تمامی کتاب های عهد جدید میپردازیم و از اناجیل شروع میکنیم. معلم ما راه این سفر در کلام خدا رو میدونه و حالا ما در این سفر اکتشافاتی با اون هستیم. کشف حقایقی در مورد زندگی ایسای مسی. ما امروز خواهیم دید که عیسی تنها نیومد که به ما بگه بلکه اومد که به ما نشون بده. او راه، راستی و حیات است. با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم. ایسا به او گفت من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. اما من شاهدی بزرگتر از یحیا دارم. کارهایی که پدر به من سپرده است تا انجام دهم بر این حقیقت شهادت می دهند که پدر مرا فرستاده است. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. در این کلاس ما شروع به بررسی تمامی کتاب عهد جدید می کنیم. در ابتدا از چهار انجیل شروع می کنیم. آیاتی مثل اینها از اناجیل به عنوان مقدمه برای چهار انجیل متا مرقس، لوقا و یوحنا به ما داده شده. ها این خبر خوش رو به ما میدن که عیسی آمد و وقتی آمد، با مأموریتی آمد. او می معموریتش مأموریتش چیه؟ عیسی این تفکر با شکوه رو داشت که تمامی کارهایی رو که پدر به او سپرده بود، به انجام برسونه. تاریخ دنیا بیشتر به این دلیل به پیش از آمدن مسیح و بعد از آمدن او تقسیم شده چون که او تمامی کارهای پدر رو که به او سپرده بود به انجام رسوند وقتی عیسی به پدر گفت من تو را بر روی زمین جلال دادم چون تمامی کارهایی رو که به من سپرده بودی به انجام رسوندم منظورش از این کارها چی بود ما میتونیم وقتی به انجیل میرسیم دنبال کارهای او بگردیم نویسندگان انجیل فکر میکردند که بزرگترین بخش کار عیسی مرگ بر روی صلیب بود، چون باب های زیادی رو در انجیل به شرح اون واقع اختصاص دادند. اما اگرچه مرگ او بر صلیب از اهم کارهای او بود، این تنها کاری نبود که او در طی زندگیش بر روی زمین انجام داد. او همینطور نحوه زندگی رو به ما نشون داد. اگر باید با خدا رابطه داشته باشیم، زندگیمون باید چطور باشه؟ وقتی خدمات ایسا رو در زندگی او ملاحظه میکنید، باید دنبال خدمت بازخرید او باشید که مربوط به مرگ او بر صلیب و مفهوم کلی صلیب هست. اما باید خدمت معجزات شفای او را هم مشاهده کنید خدمت شفای او نه تنها شامل شفای جسمی بود بلکه شفای روحی را رو هم دربر بر گرفت. وقتی زن سامری بر سر چاه تولد تازه یافت وقتی زندگی زکا تبدیل شد وقتی این کسانی که گناهکار خطاب میشدند، تولد تازه رو تجربه کردن، این شفای روحانی بود که غالباً منتهی به شفای جسمانی و احساسی هم می شد. تمامی اینها خدمات شفای عیسی بود. حدود یک سوم از وقای انجیل ها در باره کارهای عیسی با ما صحبت می کنن. وقتی اناجیل رو می خونید که هنوز در مرحله مقدمه اونها هستیم، خصوصا وقتی انجیل مرقس رو می خونید و خدمت موجزات ایسا و خدمت شفای او را ملاحظه میکنید خصوصا در انجیل مرقس به این تاکیدی که روی اخراج ارواح شریر شده توجه کنید خادمینی که قصد دارند مسیح رو به شیطان پرستان و کسانی که زندگیشون رو تسلیم نیروهای شیطانی کردن معرفی کنند نیاز به اخراج ارواح رو در اونها درک کرده خادمینی که با چنین افرادی کار میکنند دیو زدگی یا تحت تسلط شیطان بودن رو شوخی تلقی نمیکنند وقتی عیسی با کسانی مواجه میشد که بیمار بودند و به شفا نیاز داشتند توجه کنید که او اغلب حتی با اون افراد صحبت هم نمی کرد او شیطان درون اونها رو مخاطب قرار میداد واقعا نمیتونم تصور کنم که اگر عیسی امروز بر روی زمین می و یکی از بیمارستانهای روانی ما رو میدید چه اتفاقی میافتاد. افتاد فکر میکنم شاید نه در همه موارد اما در بسیاری موارد او تمام اصطلاحات روانشناسی ما رو خط زد و مستقیما دیوها رو مخاطب قرار میداد من تعجب میکنم اگر این مشکلیه که برخی از این مردم دارن و کسانی که با اونها کار میکنن از این واقعیت و مشکل اونها آگاه نیستن چطور میتونن به این افراد کمک کنن چطور ممکنه اونها اونقدر حالشون خوب بشه که از بیمارستان روانی مرخص بشند؟ در اناجيل خصوصا مرقس به تأکیدی که بر خدمت عیسی در اخراج ارواح شده دقت کنید. این جاییه که اعتقاد شما از اینکه عیسی کی بود و چی بود اهمیت پیدا میکنه وقتی وقایع اناجیل رو در مورد اخراج ارواحی که عیسی انجام داده میخونید آیا خواهید گفت که خوب اگه عیسی امروز برگرده، ما مطالب بیشتری در خصوص روانشناسی نسبت به دو هزار سال پیش گرفتیم؟ اگر واقعاً بفهمید که عیسی کی بود، هرگز اینطور فکر نخواهید کرد. او امانوئیل بود. خدا با ما. او گفت من راه راستی و حیات هستم. اگر او خدا در جسم انسانی بود، نمیتونید بگید او دو هزار سال پیش نمیدونست داره چی کار میکنه. و اگه امروز برگرده، کارهای متفاوت نسبت به اون زمان انجام خواهد داد. وقتی اناجیل رو میخونید، خدمت او در مورد اخراج ارواح از مردم رو نادیده نگیدید. به اعتقاد من، این بود از خدمت عیسی واقعیت بزرگی رو به ما ارزه میکنه. یک دنیای روحانی وجود داره و یک نبرد روحانی در اون دنیا وجود داره. عهد جدید در ادامه به ما میگه که دنیای روحانی یا خوب هست و یا بد. در دنیای روحانی، ارواح خوب و ارواح شرید هر دو وجود دارند. به ما تعلیم داده شده که ارواح رو امتحان کنیم تا بفهمیم که آیا از خدا هستند یا نه. ما نباید تسلیم این اندیشه بشیم که هر روحی صرفاً به خاطر اینکه یک واقعیت روحانیه و در دنیای روحانی وجود داره از ارواح خوب هست و مثل روح القدسه. کتاب مقدس به ما میگه که روح مسیح وجود داره که همان روح القدسه و همینطور ارواح قدرتمند زیر زمین هم وجود دارن. وقتی خدمت معجزات ایسا رو مطالعه می کنید، این حقیقت رو مد نظر داشته باشید. در فرهنگ ما از داروهای روانگردان برای کنترل بیماری‌های روحی استفاده می‌کنند. عیسی نسبت به کسانی که با آنها دیوانه می‌گفتند شفقت داشت. مثل مردی که لباس نمی‌پوشید و قابل کنترل نبود. عیسی با او وقت گذاشت. ما نمیدونیم او چیکار کرد یا چطور این کارو کرد. اما اون مرد لباس پوشید و حواسش جمع شد و نزد پاهای عیسی نشست. من در یک بیمارستان روانی دوره انترنی رو می‌گذروندم. زمان بود که من هیچ ایده‌ای نداشتم از اینکه عیسی چطور اون مرد رو شفا داد. اگر کسی در خانواده شما یا کسی که دوستش دارید مبتلا به بیماری روحی باشه، حاضرید چی بدید که او رو ببینید، درست لباس پوشیده و حواسش جمع و نزد پاهای عیسی نشسته. این بخش مهمی از خدمت شفای عیسی بود. عیسی کارهای بزرگتر دیگری هم که پدر بعثه او گذاشته بود، به زیبایی انجام داد. یکی از اونها کار یا خدمت بازخرید کردن و یا نجات بود، کار و خدمت او در خصوص احیاء مردم بود احییا کردن یعنی مردم را از نو ساختن. مشکلشون هرچی که میخواست باشه، همینطور خدمت مکاشفه او رو مد نظر داشته باشید. در این جلسه قصد دارم که بر این خدمت عیسی متمرکز بشیم، عیسی گفت من راه هستم. این اظهار اشاره بر مرگ او بر صلیب هست، خدمت باز خرید کردن او وقتی عیسی گفت من حیات هستم او به خدمت احیا کردن مردم اشاره می کرد و اونها رو دعوت به این می کرد تا اونطور که قصد خدا برای بشر هست زندگی کنند همینطور خدمت مکاشفه او رو ملاحظه کنید چیزی که میتونیم بهش خدمت تعلیم بگیم یک سوم از اناجیل اختصاص به چیزهایی داره که عیسی گفته اناجیل عیسی رو همونطور که بودن توصیف می کنند اناجیل همه اون چیزی که عیسی بود رو به ما نشون میدند او کلامی از سوی خدا برای ما بود او مکاشفه‌ای از خدا برای ما بود هر کاری که ایسا انجام داده در اناجیل شرح داده شده و به ما میگه که اون مکاشفه‌ای از خدا برای ما بود اناجیل به ما میگند که هر چیزی که ایسا میگفت مکاشفه‌ای از خدا برای ما بود عیسی میگفت من راه هستم من حیات هستم اما همینطور میگفت من حقیقت هستم حالا اینجا نکته مهمی در مورد تعالیم عیسی هست آیا تا به حال معلمی داشتید که شما رو تحقیر کنه مخصوصاً معلمی که به شما اخلاقیات و مسائل مذهبی درس بده هیچ کسی تا حالا چنین معلم کاملی نداشته این یک افسانه است که فکر کنید معلم شما نمیتونه شما رو تحقیر کنه دیر یا زود شما ترکهایی رو در ظرف زمینی معلمتون خواهید دید برخی از افراد از خود راضی میگن من دیگه به هیچ حرفی از این معلم گوش نخواهم کرد. وقتی به تعالیم عیسی می رسید، عیسی هرگز شما را تأخیر نمیکنه. هر چیزی که او گفته و هر تعلیمی که داده، خودش اون‌ها رو به کمال زندگی کرده. عیسی میتونه بگه من حقیقتی هستم که به شما تعلیم میدم. حقیقتی که به شما تعلیم میدم، چیزی مثل خود منه. اگر میخواید واقعا بدونید چی تعلیم میدم، بیایید و منو پیروی کنید. وقتی عیسی برخی از شاگردان رو در باب اول انجیل یوحنا ملاقات کرد، رو به اونها کرد و گفت: چه میخواهید؟ این سؤال عمیقی بود. شاگردان الهیدان و یا محقق نبودند. اونها افرادی ساده از جمله ماهیگیر و باجگیر و غیره بودند. اونها با این سؤال عملی به او پاسخ دادند: استاد، کجا تعلیم میدی؟ ما به الهیات تخت سیاهی علاقه نداریم. ما می‌خوایم بدونیم آیا چیزی که تعلیم میدی؟ حقیقت داره یا نه این رو کجا به ما یاد خواهی داد عیسی هم به اندازه شاگردان عملگرا بود او گفت بیایید و ببینید و ما میبینیم که اونها رفتند و دیدن او کجا زندگی میکنه و با او زندگی کردند اونا تصمیم گرفتن برند و ببینن و هر کدوم از اونها به خاطر چیزی که دیدن زندگی کردند و به خاطرش مردند وقتی اونا تصمیم گرفتن برند و ببینن چی دیدن؟ اونا دیدند که او چی بود اونا دیدند که او همون حقیقتی بود که تعلیم میداد تعالیم او بسیار پویا بود و خیلی مقدس و قدرتمند بود چون او خدا بود وقتی او دهانش رو باز میکرد و به اونها تعلیم میداد این خدا بود که به اونها تعلیم میداد عیسی خدا رو برای اونها متجلی میکرد و تمام حقیقت خدا رو آشکار میکرد تعالیم او بسیار مهیج بود چون او هر را رو که تعلیم میداد زندگی میکرد خدمت تعلیم ایسا رو در عباد متفاوتی می‌بینیم. خدمت تعلیم عیسی در چیزی که ما بهش مباحثه میگیم دیده میشه مثل سر کوه در متا 5، 6 و 7 وقتی شروع به خواندن انجیل متا کردید و به پایان باب چهار رسیدید شما شرحی رو میخونید که به اون معزه کوه میگیم و به عقیده بسیاری از محققین بزرگترین مباحثه یکی از ایسا دیده شده. این مباحثه، یک موعظه با معیارهای متداول نبود زمینه ای که این مباحثه در آن اومده گرده هماییه که ایسا ترتیب داده وقتی ایسا اولین گرده همایی مسیحیان رو ترتیب داد او میخواست مردم را تشویق کنه که بخشی از راه حل او و بخشی از جواب او برای تمامی مشکلات این دنیا باشن او جمعیت انبوهی را خدمت میکرد که با انواع مشکلات روبرو بودن او وقتی با این مشکلات مواجه شد، فقط یک نفر بود اما کاری هدفمند انجام داد که در پایان باب چهار شرط داده شده او بر بالای کوهی رفت و مرغوز سه سیزده به ما اینطور میگه عیسی به کوهی برآمد و آنانی را که خواست به حضور خیش فرا و آنها نزدش آمدند بعد او به اونها تعالی می داد تا بتونه اونها را بخشی از راه حل و جواب مشکلات افرادی بکنه که در پای اون کوه حضور داشتند موعظه بالای کوه یکی از قدرتمندترین مباحثات او هست. ما اون مباحثه رو با تمام جزئیاتش مطالعه خواهیم کرد طولانی ترین مباحثه عیسی که به اون مباحثه در بالاخانه میگیم در انجیل یوحنا اومده عیسی خدمتش رو در انزوا شروع کرد و در انزوا هم پایان داد او خدمتش رو با چیزی شروع کرد که من به اون اولین گردهمایی مسیحیان در بالای کوه میگم عیسی خدمتش رو در گردهمایی با شاگردانش شروع کرد و در گردهمایی با شاگردانش پایان داد. او خدمتش رو با چیزی شروع کرد که من به اون اولین گردهمایی مسیحیان در بالای کوه میگم جایی که موعظه سر کوهش رو برای مردم بیان کرد. وقتی عیسی به اون مباحثه پایان داد، او کسانی رو دعوت کرد که دعوتی چالش برانگیز بود. وقتی عیسی به تعالیمش پایان داد، از مردم گسترده ای رو خواست. ما نمیدونیم که در اون گرده همایی چند نفر شرکت کرده بودن. اما میدونیم که فقط دوازده نفر به او پاسخ مثبت دادن. عیسی با اون دوازده مرد مأموریت داد تا بخشی از راه حل و جوابهای او باشند. عیسی سه سال با اون دوازده نفر زندگی کرد. او دائما با اونها بود. وقتی خدمت او به پایان رسید، به طور جداگانه در بالاخانه با اون شاگردان ملاقات کرد. و گرده همایی و مباحثه دیگری با اونها ترتیب داد. تمامی بابهای سیزده، چارده، پانزده و شانزده انجیل یوحنا این مباحثه را ثبت کردند. من به اون گرده همایی آخرین گرده همایی مسیحیان گفتم. این طولانی ترین مباحثه ثبت شده از عیسی هست. اکثر تعالیم عمیق او در اولین گرده همایی معزه سر کوه و آخرین گرده همایی مسیحیان مباحثه بالاخانه دیده میشه از اونجایی که عیسی مسیح بزرگترین مکاشفه که خدا به این دنیا داده پس تعالیم عیسی مخصوصا بزرگترین مباحثه او مثل معزه سر و مباحثه بالاخانه رو میتونیم بزرگترین مکاشفات حقیقت بدونیم که خدا به این جهان داده من شما رو تشویق میکنم که این تعالیم عیسی را مطالعه کنید تا درک کنید و این حقایق رو در زندگی خودتون به بگیرید مباحثه بزرگ دیگر عیسی که بهش مباحثه کوه زیتون میگیم در متا با پای 24 و 25 ثبت شده. مباحثه کوه زیتون عملاً یک مباحثه یا موعظه نبود. بلکه گفتگوهایی بود بین عیسی و شاگردان او. رسولان از عیسی سوالاتی میکردند. ظاهراً مشخص بود که عیسی اونها رو تشویق میکرد تا سوال بکنن. اونها به معبد اشاره میکردند و میپرسیدند آیا این بنای باشکوهی نیست؟ بعد از اون عیسی در مورد آینده صحبت میکنه و نبوت میکنه. او گفت روزی میاد که هیچ سنگی از این معبد بر روی سنگ دیگر باقی نخواهد ماند. اونها پرسیدند این وقایه کی اتفاق خواهد افتاد و نشانه های آمدن پایان جهان چه خواهد بود؟ در پاسخ به این سوالات او به رسولان در متا با پای 24 و 25 تعالی می میده که به اونها گفتگوهای کوه زیتون میگیم این گفتگوها در مورد آمدن سانویه ی ایسای مسیح هست به علاوه تعالیم ایسا که در مباحثات بزرگ او میبینیم شما میتونید تعالیم دیگری از ایسا را هم ببینید که به اونها مباحثات کوچک گفته شده اگر در بررسی عهد قدیم با ما همراه بودید حتما به یاد دارید که انبیاء بزرگ کتاب های بزرگ نوشتند که 66 باب و2 باب و یا و 48 باب داشتن همینطور بیی داشتیم که به اونها B کوچک میگفتیم. نه به خاطر اینکه کمتر از انبیای بزرگ بودن بلکه برای اینکه اونها میتونستن پیام هاشون رو بهتر جمع وجور اونها شست و شش باب ننوشتند. شاید فقط یک باب نوشتن اما به هیچ عنوان دست کمی از انبیا بزرگ که شست و شش باب نوشتن نداشتند انبیای کوچک احتمالاً بیشتر از انبیاء بزرگ مورد توجه بودند. اگر شما در یک روز یک شنبه حق انتخاب داشتید احتمالا ترجیح میدادید که پیام یک نبی کوچک رو بشنوید تا یک نبی بزرگ رو مباحثات ایسا که کتاحتر هستند کوچک نیستند. اینکه گفته میشه اونها به اندازه مباحثات بزرگ ایسا مهم نیستند به خاطر حجم اونها هست بعضی از بزرگترین تعالیم ایسا در تعالیم خلاصه او هست در مثلها و تمثیلها برخی از عمیق ترین چیزهایی که او میگه به صورت کاملا خلاصه و در یک جمله و یا در یک آیه از کتاب مقدس عنوان شده. بعضی از بزرگترین تعالیم عیسی در گفتگوها نهفته است. مثلا مباحثه بالاخانه در واقع گفتگویی بود بین عیسی و شاگردانش. وقتی یوحنا بابای 13 14 15 و 16 رو میخونید ملاحظه کنید که وقتی اون مردان با ایسا بر سر سفر نشستند از او سوالاتی میپرسند. ایسا مرتبا مشغول گفتگو بود. گاهی این گفتگوها بسیار خسمانه بود. شما گاهی ایسا رو در گفتگوی خسمانه با کسانی می بینید که عملا قصد داشتند او رو بکشند. رهبران مذهبی از طرف ایسا بسیار تهدید می شدن. برخی از میق اظهارات ایسا از گفتگوهایی در پاسخ به چیزی که کسی به او گفته، یا یا چیزی که عیسی از اونها پرسیده اومده مهم نیست که عیسی در چه فضایی و یا در چه موقعیتی حرفاش رو عنوان کرده مهم اینه که تمامی اونها تعالیم عیسی هستند عیسی بزرگترین معلمی بود که تاکنون به دنیا اومده او پیوسته در حال تعلیم دادن بود بنابراین وقتی انجیل رو میخونید تعالیم عیسی را به دقت ملاحظه کنید به طور خلاصه اینها کارهایی بودند که عیسی میخواست بر روی زمین انجام بده اینها افکار و دقدقه های باشکوه او بودند. کار بازخرید او کار احیای مردم و کار مکاشفه این سه کمال ایسا به شما دید گاهی درست از کارهای عیسی خواهد داد وقتی اناجیل رو می خونید دنبال این کمالات عیسی بگردید وقتی که تعالیم عیسی را ملاحظه می کنید می که ایسا یک سیستم ارزشی داشت همه ما برای خودمون یک چارچوب ارزشی داریم. طبق تعریفی که در لغتنامه از ارزش شده، ارزش عبارت از کیفیت خاص چیزی هست که توسط اون تعیین می کنیم اون چیز تا چه اندازه ارزش داره. چقدر مفید یا پسندیده هست؟ با توجه به این تعریف از ارزش ملاحظه می کنید که ایسا برای خودش سیستمی ارزشی داشت. عیسی مرتبا با تعالیمش یا با چیزهایی که میگفت و کارهایی که می کرد و با واکنش هایی که نسبت به کسی نشون میداد، نشون میداد که سیستمی ارزشی برای خودش داره. کلمه ای در عهد جدید هست که نقش بسیار مهمی در خدمت تعلیم عیسی داره. اون کلمه اعتراف هست. کلمه اعتراف در انگلیسی از دو کلمه یونانی ترجمه شده که معنی اون دقیقاً اینه. صبات در گفتار. اعتراف کردن یعنی بر سر حرف خود ایستادن و صادقان حرف زدن. تصور کنید که یک روز صبح همسر شما با هدایای سوختنی شما را احترام کنه و شما در مقابل میز صبحانه را ترک کنید و در رو به هم به و خونه رو ترک کنید. تمامی خانواده شما غرق در حیرت میشد سر راهتون متوجه میشید که کار شما اشتباه بوده. بچه ها زیر صندلی پنهان شده بودند و عملا از خشم شما عصبانی بودند و تصمیم میگیرید نزد خدا اعتراف کنید. همچنان که به راهتون ادامه میدید، فرض کنید به خدا میگید پدر من واقعا اونجا اشتباه کردم اما میدونی پدر اگر موسی زن من رو میشناخت حتما فرمان دیگری صادر میکرد فرض کنید که اینطوری اعتراف کردید آیا به نظرتون این اسمش اعترافه این اعتراف نیست اعتراف توجیه کردن و داوری کردن خودتون نیست اعتراف این نیست که بگید متاسفید که کنترلتون رو از دست دادید اعتراف این نیست معنی اعتراف اینه شما به خدا میگید پدر در مورد کاری که من انجام دادم نظر تو چیه؟ اگر کتاب مقدس رو بدونید میدونید که خدا در مورد کار شما چی میگه. بعد شما هم همون چیز رو میگید. شما هماهنگ با خدا صحبت میکنید. شما با خدا توافق میکنید که کاری که کردید اشتباه بوده. این یعنی اعتراف. اگر معنی اعتراف این بود که به خدا بگید متأسفید، اون وقت وقتی کتاب مقدس میگه رو اعتراف کنید، آیا به خدا خواهید گفت که در مورد عیسی متأسفید معنی این چیه که کتاب مقدس میگه باید عیسی رو اعتراف کنید معنی اعتراف عیسی مسیح پیروی کردن او توسط اناجيل و کارهایی که او انجام داده توسط چیزهایی که او از ماهیت خودش نشون داده وقتی او چیزی میگه که دارای ارزشی هست شما هم در همون چیز توافق میکنید همون چیز رو میگید که او در مورد ارزش میگه این زندگی شما رو متحول میکنه. من شما رو تشویق می کنم که این کار رو بکنید و جیل رو بخونید و به ارزشهای های مسیح اعتراف کنید. این روی کرد خوبی به خدمت تعلیم ایسا هست. یک مطلب دیگه هست که در مقدمه آنجیل میخوام با شما در میون بذارم. اون چیزی که محققین بهش مشکل هم نزیری میگن. به سه انجیل اول متا، مرقس و لوقا به عنوان اناجیل هم نزیر اشاره شده برای اینکه محتویات هر سه این اناجیل با همدیگر مشابه هستند محتویات اونها با هم مشترک هستند وقتی به اناجیل برسید و اونها را مطالعه کنید خواهید دید که انجیل یوحنا مشابهتی با سه انجیل دیگه نداره در درصد محتویات انجیل یوحنا در اناجیل متا، مرقس و لوقا وجود نداره بیشترین چیزی که در انجیل یوحنا می خونید، اگر انجیل یوحنا وجود نداشت شما نمیتونستید هیچ اطلاعی از اونها داشته باشید. یوحنا تنها کسیه که با ما در مورد مصاحبه عیسی و نیقودیموس صحبت میکنه. یوحنا تنها کسیه که در مورد زن سامری با ما صحبت میکنه. قبلا هم گفتم که این دوره‌ای که ما کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم دوره تحقیقاتی نیست و قصدم ندارم که چون این دوره ای برگزار کنم. اما وقتی محققین متا، مرقص و لغا رو بررسی میکنند، آنها اونها از مطالعه متون این سه انجیل به این نتیجه می رسند که انجیل مرقص باید پیش از همه نوشته شده باشه. بعد متا و لغا چیزهایی به مطالبی که مرقص نوشته اضافه کردن. هر چیزی که در مرقص هست، در متا و لغا هم وجود داره. مطالبی در متا وجود دارند که در مرقص وجود ندارند و مطالبی در لغا وجود دارند که در نیستند. چیزهایی هم در لغا هست که در متا وجود نداره. پس محققین عقیده دارند که مرقس قبل از همه نوشته شده و بر این باورند که منبع او پتروس بوده. حالا مرقس خیلی خلاصه نوشته. اگر شما نگاری بودید که تحصیلات نگاری رو تموم کرده بودید بهتر بود که اول متا و لغا رو بخونید و بعد مرگوس رو بخونید و ببینید که چطور مرگوس میتونه همون چیزهایی رو که مطاب و لغا گفتن به طور خلاصه به شما بگه. کتاب مرقس نمونه ای از گزارش خلاصه هست. ظاهرم پیداست که مطا احساس کرده که چیزهایی در مورد عیسی هست که مرقس به اونها اشاره نکرده. و روح القدس مطا رو ملزم کرد تا دیدگاه خودش را از اون چیزها با دیگران در میون بذاره. او بر چیزهای متفاوت نسبت به مرگوس تاکید میکرد او نظریاتی داشت که می‌خواست ابراز کنه که مرقس ابراز نکرده بود. لغا هم ظاهراً همون احساس رو داشته و اما سالها بعد یوحنا قلم رو به دست میگیره چون یوحنا عمیقاً معتقد بود که مطالبی در مورد عیسی وجود داره که متا و و لغا به اونها اشاره‌ای نکردند. وقتی یوحنا انجیلش رو مینوشت کفر و ارتداد در مورد شخص عیسی مسیح بالا گرفته بود. دیدگاهی که یوحنا در انجیل خودش آورده این بود که ایسای مسیح خداوند در جسم انسان بود. چون محتویات انجیل مرغوث لوقا و متا هم نزیر بودند و مطالب انجیل یوحنا منحصر بفرد بود، ما اناجیل متا، مرغوث و لوقا را به صورت یک مجموعه واحد میخونیم. چون محتویات انجیل مرغوث، لوقا و متا هم نزیر هستند و مطالب انجیل یوحنا منحصر بفرده، ما اناجیل متا مرقس و لغا رو به صورت یک مجموعه واحد می خونیم و بعد جدای از اونها انجیل یوحنا رو مطالعه خواهیم کرد من تصمیم گرفتم که هر تعلیم و هر گفتگو و هر واقعی در زندگی عیسی رو که در اناجیل هم نظیر هست همه رو یک جا جمع کنم و حتی تلم در یک جلسه جا بدم گاهی اون تعلیم و وقایه و گفتگوها در هر سه انجیل اومده و گاهی چهار بار در هر چهار انجیل هست اما برخی از اونها فقط یک بار نوشته شده ما این وقایه رو به ترتیب در انجیل متا بررسی خواهیم کرد و بعد به انجیل لغا خواهیم رفت و چیزهایی رو از لغا انتخاب خواهیم کرد که در متا وجود نداشته از اونجایی که هر چیزی که در انجیل مرقس وجود داره در انجیل متا و لغا هم هست وقتی بررسی متا و لغا رو تموم کنیم میشه گفت که تقریبا تمام مطالب اناجيل هم نزیر رو تموم کردیم ما آماده ایم که یکی از اناجیل رو بررسی کنیم من میخوام که بررسی مون رو با بررسی انجیل متا شروع کنیم میخوام ضمن بررسی انجیل متا به شما تکلیفی بدم اگر میخواید که کتاب مقدس رو با من بررسی کنید میخوام تشویقتون کنم و بهتون تکلیفی در مورد رسولان بدم حتی اگر نتونید تکالیف کتبی انجام بدید میخوام تشویقتون کنم که حتما زندگی رسولان رو بررسی کنید. هدف این تکلیف اینه که وقتی هر کدوم از رسولان رو بررسی می‌کنید، به شما سوالاتی بدم و جواب این سوالات رو درباره هر کدوم از این دوازده نفر که عیسی سه سال تمام در خدمات عمومیش با اونها همراه بود، از شما بپرسم. وقتی این مرد با عیسی ملاقات کرد چه کاره بود؟ در نتیجه این واقعیت که او با عیسی برخورد کرد، چطور زندگی او تغییر کرد؟ به نظر شما چرا عیسی این افراد رو انتخاب کرد تا رسول باشند اگر به این سه سوال در مورد دوازده رسول جواب بدید یک برکت روحانی خواهید گرفت وقتی میبینید که چطور ملاقات با عیسی زندگی این دوازده مرد رو عوض کرد به این نتیجه خواهید رسید که مواجهه شما با عیسی چطور در زندگیتون تأثیر خواهد گذاشت باز هم وقتی عهد جدید رو میخونید، با یک چنین دیدگاهی بخونید آیا من تا کنون تولد تازه یافتم؟ آیا من تبدیل شدم؟ آیا با خدا آشتی کردم؟ وقتی من زندگی و خدمات عیسی رو درک بکنم دقیقا او برای من چه مفهومی داره؟ وقتی متا، مرقص، لوقا و یوحنا رو میخونید با خودتون روبرو بشید. وقتی این کار رو میکنید اگر تا کنون تجربه ایمان نجات بخش در رابطه با عیسی رو نداشتید از خدا بخواهید که ایمانی نجات بخش در قلب شما قرار بده و اگر قبلا تجربه کردید از او بخواهید که در ایمانتون شما رو رشد بده دوستان ما وقتی دوازده شاگرد ایسا رو مطالعه میکنیم میبینیم که اونها مردان عامی بودن فقط چند نفری از اونها با سواد بودن پتروس که رهبر شاگردان میشه فقط یک ماهیگیر حقیر بود اگر خدا تونه مردانی مثل اون رو به کار بگیره، پس معنیش اینه که اون میتونه و میخواد من و شما رو به کار بگیره. زندگیتون رو به اون تسلیم کنید و بگید من آمادم، من رو به کار بگیر. ترتیبه بدید که در جلسه بعد هم که بررسی عهد جدید رو ادامه میدیم، با ما هم راه باشید. امیدواریم خدا به شما برکت بده و شما رو در محبت خودش حفظ کنه.